اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل صاعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وأرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام علیکم یا اهل بیت النبوه به الله در بررسی ادله نقلیه استناد شده به آن در وحدت شخصی وجود بودیم به استدلال به آیات قرآن رسیدیم آیاتی رو در این زمینه به الله بررسی کردیم مطلبی رو که لازم است که این رو ذکر بکنیم این است که در روایات وجودات نازنین اهل بیت اسمت و طهارت تبین های زیادی در این زمین رسیده و روایات روایات متعددی در این زمین بیان شده لذا گاهی اوقات این که به مختزای زیق وقت به بعضی از این روایات اکتفا می شود، دلیل بر انحصار این مطالب در این چند روایات نیست و روایات در این زمینه به حمد الله متعدد هست و انشاءالله عزیزان برای تفسیر بیشتر میتوانند به این معارف الهی وجودات نازنین اهل بیت مراجعه بفرمایند. آیه چهارمی رو که میتوانیم ذکر بکنیم که به این آیه استدلال شده برای اثبات وحدت شخصی وجود این آیه شماره سی سوره حدید هست که خب این استدلال به این آیه شریفه به این نحو می شود بیان بشود که آیه شریفه میگوید که اول خداست آخر خداست خب اول و هم اول خداست هم آخر خداست ظاهر خداست باطن خداست خب همه چیزها به این تعبیر می شود خدا وقتی که خداوند متعال بیان می کند که اول و آخر و ظاهر و باطن همه اینها خداست خب این یعنی وحدت وجود این یعنی وحدت شخصیه وجود به تعبیر دیگر لسان آیه لسان حسر است و آیه شریفه دارد میفرماید که اول فقط خداست آخر فقط خداست ظاهر هر چیزی که در ظاهر هست فقط خداست باطن همه چیزهایی که در باطن هستن فقط خداست لذا این آیه وحدت وجود و وحدت شخصی وجود رو بیان می فرماید. در نقد این آیه شریف خوب به نکاتی ما اشاره میکنیم شاءالله اولین نکته که این, این که باز این آیه شریفه مثل آیات گذشته ظهورش هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود و مطلق حتی وحدت وجود نداره چرا؟ چون حتی طبق این معنای غلطی که اینها از این آیه کردن که انشاءالله اشاره میکنیم حتی طبق این معنای غلطی که از این آیه کردند و این رو به ما از این آیه ارز کردیم فقط در این آیه شریفه خداوند متعال بیان میپرماید که اول و آخر خداست خب اول که معلوم است اون موجود اول خداست خب اول خداست آخر خداست ظاهر و باطن خداست خب اون چیزی که ظهور دارد به نحو بیقید یعنی ظهور مطلق دارد ظاهر مطلق خداست اون چیزی که بتون دارد به نحو مطلق باطن مطلق خداست و سایر مخلوقات هم خب اونها اولا اول و آخر نیستند. خب این واضح است. و اگر حتی سایر مخلوقات هم اینها ظهوری دارن، اینها بوتونی دارن، خب اینها ظاهر مطلق نیستن، اینها باطن مطلق نیستن. ظاهر و باطن بدون قید اینها نیستن. رضا اونی که ظاهر و باطن مطلق هست فقط خداوند متعاله یا بتوانیم به این نفع این رو، بیان بکنیم که چه بسا اصلا بگوییم که بوتون و ظهور نسبت به مخلوقات اینها صدق نمی بلکه ظاهر و باتن خب این معنای ظهور چه معنایی از این ظهور اراده شده؟ اینی که ظهور دارد ممکنه اینی که مخلوقات هستند صدق ظهور اصلا به اینها نکنه صدق بوتون به اینها نکنه و یا به همان تعبیر اولی که ما عرض کردیم اونی که به نحو مطلق باطن است اونی که به نحو مطلق ظاهر است خب این فقط خداوند متعاله خب این چه ربطی به این دارد که سایر مخلوقات هم اینها وجودشون وجود خداوند متعاله، اونها هم خدا هستند به در چهار چیز خداوند متعال فرمود که این چهار چیز خدا هستند خب این چه ربطی دارد که ما این رو سرایت بدهیم به سایر مخلوقات و این رفتی اصلا به وحدت وجود و وحدت شخصیه وجود نخواهد داشت نقد دوم اینکه اگر آیه اینطور بود ال اولا هوه ال آخرا هوه الظاهرا هوه الباطنو هوه خب باز این لسان لسانش به حصر نزدیکتر بود یعنی سؤال ما از باطن بود که باطن چیست و یا خداوند خدا که الباطن و حوه باتن باطن خداست از ظاهر و ظاهر خداست اول خداست هوبه، خدا هوبه، الاخر و حوه آخر هم خداست خب این لسانش به حصر نزدیکتر بود تازه اگر ما فلام در این کلمات این آیه شریفه رو اینها رو مثلا عرفلام ماهیت و جنس یا الفلام استقراق معنا بکنیم که یعنی همه مثلا ظاهرها همه باطنها یا اصلا حقیقت باتن و حقیقت ظاهره اینطور معنا بکنیم تازه اگر الفلام اینها رو هم ما به این نحو بگیریم خب چه بسا این یک استشعاری در معنای حسر بشود اما خب اولا علف رو چه بسا علف در این آیه شریفه علف اهد عهد باشد یعنی یک اول خاصی مورد نظر خداوند متعال است یک آخر خاصی مورد نظر خداوند متعال هست یک ظاهر خاصی مورد نظر خداوند متعال هست یک باطن خاصی مورد نظر خداوند متعال هست و اینها رو خداوند متعال بیان می‌فرماید که خداست لذا از این نمی‌شود ما بیان بکنیم که یعنی این همه ظاهرها خداست همه باطنها خداست و اینی که ما ارز میکنیم که چه بسا حتی الفلام رو بشود به معانی دیگر از جمله معنای عهد الفلام عهد اینها رو گرفت این اتفاقا شواهدی هم دارد و انشاءالله در بیاناتی که از عیمه معصومین در مورد همین آیه شریف رسیده اشاره میکنیم کما اینکه اینکه ممکنه که در بعضی از کلمات وجودات نازنین معصومین به همچین تعابیری آمده و خود حضرات فرمودند که مراد از اول این اول خاص هست مراد از آخر این آخر خاص هست نه مطلق آخر و مراد از ظاهر و باطن هم ظهور و بطون خاص هست لذا می شود به این نهر گرفت که در اینجا دیگه اصلا به طور کلی مفارقت دارد از وحدت وجود و وحدت شخصیه وجود و اینطور هم نیست که علف عهد مثلا این مجازی باشد یا خلاف ظاهر باشد. مضافن به اینکه که اصلا لسان آیه اینطور است که هوه مقدم شده و بعد اول آمده لذا ما در ترجمه آیه ارض کردم که این معنای غلطی است که اینها دارند از این آیه شریفه میکنند که اول خداست آخر خداست بلکه اگر بخواهیم ما آیه شریفه را معنا بکنیم اینطور است که او اول است بله اول از همه مخلوقات بوده او آخر است او ظاهر است ظهور داره خداوند متعال او باطن است او بتون دارد خداوند متعال بتون دارد هم ظهور دارد هم بتون دارد و این لسان لسان حسری نیست این استفاده را از این نمیشود کرد کما اینکه ما صفات دیگری رو در مورد خداوند متعال به همین لسان ما بیان می‌کنیم هو عالم خداوند متعال عالم است آیا یعنی ما در این لسان می‌خواهیم بگوییم که هیچ کس و هیچ مخلوقی حتی به اندازه خودش هیچ نحوه علمی ندارد هو القادر هو السامع اون شنونده هست بلکه اتفاقا این سامع چه بسا به این نحوش در خب که حالت سمع حالت رسیدن صدا به گوش و شنیدن باشد اتفاقا در مخلوق این به این نفع هست و ما این رو چه بسا برای تقریب به ذهن برای اینکه خداوند متعال آگاه به اصفات هست نسبت به خداوند متعال میدهیم لذا خب اینطور نیست که سمعی نداشته باشند سامعی نباشند مخلوقات اما خب ما میگوییم حبا سامع لسان لسان حصر نیست. هو الباسط اون کسیه که بالاخره میگیرد از مخلوقات واسط الیدین و صفات دیگری رو که ما با همین لسان به خداوند متعال نسبت میدهیم و لسان لسان حصر نیست، لسان انحصار نیست. لذا اگر ما بخواهیم آیه را حقیقتاً درست معنا بکنیم نباید اینطور معنا بکنیم که باطن اوست ظاهر اوست بلکه باید اینطور معنا بکنیم که او باطن است بله بتون دارد و او ظاهر از ظهور دارد و معنای حقیقی آیه و ظاهر آیه بر این مسئله دلالت دارد نکته سوم رو که ما مناسب است که در اینجا بیان بکنیم این است که در خود این آیه شریف بعد از این عبارات که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن این داره که هو کل شیء علیم خداوند متعال به هر چیزی علم دارد خب خود این لسان این اثبات شیعیت بقیه ای اشیاء است اثبات بودن بقیه ای اشیاء است اثبات تعدد و کسرت و اختلاف در بین اشیاء هست حقیقتا اشیاء وجود دارد و اثبات این است که خداوند متعال در مقابل اینها قرار دارد یک اشیاءی هستند و بعد خداوند متعال هست که به اینها علم دارد خب در اینجا لسان آیه ظهور آیه در اینجا کثرت حقیقی است و اینطور نیست که ما بخواهیم بگوییم که این آیه شریفه مجازن دارد این حرف رو میزند حقیقتا چیزی نیست و بلکه این آیه به نحوه مجاز دارد این را حرف میزند و این رو بیان میکند خب اگر اینطور بخواهیم آیه رو معنا بکنیم در واقع به ظاهر عمل نکردیم آیه رو یک تحویل بعیدهی کردیم که مخالفت فراوان با ظاهر آیه دارد و فی الواقع ما این وحدت وجود رو چون از جای دیگری ما ثابت دانستیم که ما اشاره کردیم که هیچ کدام از ادله حتی عقلیه و شهودیه و سایر عدله هیچ دلالتی به این ندارد چون از جای دیگری ثابت کردیم خب لابد باید آیه, آیه رو هم اینطور معنا بکنیم و الان ظهور آیه فریاد میزند نفی وحدت شخصیه رو و منافات دارد با وحدت وجود و وحدت شخصیه وجود. نکته چهارمی رو که ما ان بیان می‌کنیم اینه که خب در خود روایات کامل معنای اول و آخر و ظاهر و باطن بیان شده و مفسرین حقیقی قرآن کریم عالمین حقیقی به کتاب آسمانی اونها کامل این عبارات رو برای ما معنا کردند روایت است در کتاب کافی مرحوم کلینی این روایت شریف رو از احمد ابن ادریس نقل میکنه که ایشون شخص سقه و بسیار خوبه جلیلالقدره ان محمد ابن عبدالجبار نقل میکنه که ایشون ثقه است ان سفان ابن یحیا که ایشون بسیار خوب و جلیلالقدره انفزهیل ابن عثمان که همون فضلبن ابن عثمانه که ایشون تعبیر نجاشی اینه که سقتون سقت بسیار ثقة ایشون ان ابن ابي یعفور که ابن ابي یعفور داره این رو از آقا امام صادق علیه السلام بیان میکنه که خود عبدالله ابن ابي یعفور هست که این سقتون سقت بسیار ثقة تعبیر آمده که جلیلون فی اصحاب نوع. یکی از اصحاب جلیل القدر و حتی ابن شهراشوب ایشون رو جزو خواص اصحاب آقا امام صادق علیه السلام بیان کرده یک همچنین شخصیتی که جزو اصحاب سر حضرت هست جزو خواص اصحاب آقا امام صادق علیه السلام هست که طبعا اگر بیان بنا بود که معارفی در اینجا وجود داشته باشد که هر کسی نتاواند اون رو درک بکند خب حضرات معصومین به همچین افرادی مثلا میفرمودند فرمودند یا همچین کسی دارد این مسئله رو از آقا امام صادق علیه السلام سوال میپرسد که قال سألتو عبا الله علیه السلام از آقا امام صادق علیه السلام سوال کرده من قول الله عز وجل از این قول خداوند متعال عز وجل که هو اول و الاخر اون اول و آخر است و تو اما اول فقد عرفناه خب اول رو فهمیدیم چیه معناش کاملا واضح است و کسی هم در اول شبهی ندارد اون اول خداست و بقیه از خداوند متعال اینها نشأت گرفتن خداوند متعال اونها رو خلق کرده است اونها رو آفریده است و اما آخر فبین لنا تفسیره جان تفسیر آخر رو برای ما بیان بفرمایید قال فقال انه ليس او يتغير او يدخله التغير والزوال چیزی نیست مگر اینکه به هر حال یک نابودی دارد یا تغ... تغییر در اون رخ می‌دهد از حالی به حال دیگر می شود زوال در اون داخل می شود او ینتقل من لونا الى لون و گاهی اوقات از رنگی به رنگ دیگر تغییر پیدا می کند او و من هیئت اله از هیئتی به هیئت دیگر و من صفتن اله صفه از صفتی به صفت دیگر تغییر پیدا می کند همین تغییر در احوال انسان گاهی اوقات قذبناکه گاهی اوقات خوشحال. خب اشیا اینگونه هستند حتی در مورد ملائکت الله هم ما اینها رو سراغ داریم و از اینها میبینیم که احوالات مختلفی بر اونها آرز میشود و من زیادت این نقصان گاهی اوقات اینها چیزی رو زیادتر دارن این کم میشود و من نقصان این الا زیادت گاهی اوقات کم هستند و اینها زیاد میشوند. الا رب العالمین مگر خداوند متعال فانه انه لم یزل و یزال واحده اون همیشه در یک حالت واحدی هست قذبناک به معنایی که ما در نظر داریم که حال خداوند متعال تغییر بکند در خدا راه ندارد و هو الاول قبل كل شیء اون اول از قبل از هر چیزی و هو الاخر و هو ما و علام لم یزل اون آخر از بنابر این چیزی که هیچ زوالی ندارد علام عالم یزر لا تختلف علیه صفات حالا در بعضی از نسخ واو هم داره ولا تختلف علیه صفات اینی که آخر هست یعنی هیچ صفتی در خداوند متعال تغییر نمی کند ول اسماء اینطوری نیست که اسما به خاطر تغییر احوال خداوند متعال بر خداوند متعال هم شود کما تختلف و على غيره کما اینکه بر غیر خداوند متعال هم می شود مثل الانسان الذي و تراب مره مثل انسانی که گاهی اوقات خاک است و مرته لحما گوش می شود و دمن و مرته رفات و من استخوان پوسیده می شود و بعد با زوره حضرت میزنن و کلبسر لذی يكون مرتن بلحن و مرتن بسرن و مرتن رتبن و, مرتن و مثل اون میوه خورما غوره, غوره خورما قبل از رسیدنه که خب این مراحل مختلفی رو تیمی کند گاهی اوقات خورمای مثلا تازه میشود گاهی اوقات نیم رسه. گاهی اوقات تازه است گاهی اوقات خورمای خشکه علیه الاسماء و وَالْصِفَاتِ اسماء و صفات به حسب اون تودل ذات بر اینها هم می شود و الله جل و عز به خلاف ظالک خداوند متعال به خلاف این است اینی که آخر به خداوند متعال حمل شده است این است خداوند متعال به تعبیر آمیانه ما آنچه که هست همون اول و آخرش هست اینطور نیست که بعد از این حالت حالتی دیگری رو داشته باشد در یک صبات خداوند متعال قرار دارد نه تبدل حالات نه تبدل صفات نه تبدل اسما به لحاظ های حقیقی که متبدل میشوند در ذات الهی خب در خداوند متعال این گونه نیست و از این جانب هست که به خداوند متعال آخر حمل می شود در حدیث شریف دیگری است که این حدیث شریف رو هم مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف آوردن هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحیدشون هم در عیون اخبار رضا که این رو از احمد ابن محمد ابن امران دقاق نقل میکنن که خب یکی از مشایخ شیخ صدوق هست و در بعضی از جاها واسطه بین مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق قرار گرفته و از بعضی از عبارات شیخ صدوق حتی عباراتی رو که در اویون داره رضایت مرحوم شیخ صدوق از این فرد استفاده می شود و می این فرد رو ما ممدوح حساب بکنیم و طبعا اینی هم که مرحوم کلینی در نقل این سقاط عظیم ایشون رو واسطه قرار داده می این رو حتی قرینه بر این بگیریم که مورد اطمینان مرحوم شیخ صدوق ایشون بوده علاوه بر این که عرض می کنم که ایشون به شهادت خود مرحوم شیخ صدوق ایشون ممدوه هست و مورد هست. ان الکلینی که ایشون سقه است. ان الالان که خب دایی مرحوم است که ایشون سقه است. ان محمد ابن ایسا که ایشون سقه است. ان ابن خالد که ایشون هم سقه که البته الا کرارا اعز کردیم با زم میکنیم که تفصیل این بحث های رجالی خب دقیقترش اینجا جاش نیست و به همین مقدار ما اکتفا میکنیم و عزیزان می به منابع مفصلتر از رجال هم مراجعه بفرمایند که ان ان حسن ان اب الحسن الرضا علیه السلام از آقای ابو رضا علیه السلام حدیث مفصلی است که نقل میفرمایند و حضرت صفات الهی رو بیان میکنند و در صدد این هستند که بفرمایند که این صفاتی رو که ما به خداوند متعال حمل می‌کنیم اینها در اسم گاهی اوقات مشترک هستند با صفاتی که بر مخلوقات حمل می‌شود فقط اشتراک اسمی است اما در معنا تفاوت دارند و اینطور نیست که شما همون معنایی رو که در انتصاب اینها و در نسبت دادن اینها به مخلوقات در نظر می‌گیرید همون معنا رو در خداوند متعال در نظر بگیرید حضرت خوب صفات مختلف رو بیان میکنن حدیث طولانی است تا همین صفت ظاهر و باطن میرسند و اما ظاهر اما اینی که خداوند متها ظاهر است فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوبن فوقها گایقات ما ظاهری که در نظر میاریم اینی که خب این بر همه چیز قرار گرفته ما اول چیزی رو که میبینیم اون است که میبینیم به این نحو ظهور در نظر ما جلوه میکند. من فلیس من اجل انهو على اشیاء بر فوق این بالاتر از اشیاء قرار گرفته حالا اینی که بر اشیاء سوار شده و قعودن علیها بر اونها نشسته و تسنمن لزراها ولیکن قهره لقهره ولغلبته الاشیاء و قدرته علیه اینی که خداوند متعال ظاهر است به خاطر اینکه قلبه دارد بر اشیاء قالب است بر اشیا چیز دیگری نمیتواند بر خداوند متعال چیره شود تعبیر فرمودن لقهرهی ولی غلبت الاشیا و, و قدرتهی علیهان این که خداوند متعال قدرت دارد بر اشیا غلبه در اینجا معنا شده که منظور چیست قدرت دارد بر اشیا که قول رجل بعد حضرت میخوان جا بیفته با زوره کسی پیدا نشود که حتی در این کلمات سریح بخواهد یک جوری مصادره بی مطلوب بکند که قول الرجل زهر تو على اعدائی گاهی این استعمال می شود که من ظاهر شدم بر اعدائم یعنی بر اونها چیره شدم بر اونها پیروز گشتم و از ازهرن الله علا خسمی خداوند مطال من رو بر دشمنم پیروز گردانید خب آیا معناش اینه که من همون دشمنم هستم نه معناش نیست معناش واضحه حضرت مثال میارن یخبر عن الفلج و الغلبه پس دوباره تصریح میکنند حضرت که اینها دارد خبر میدهد بر پیروزی بر غالب شدن و غلبه پیدا کردن بر اونها اونها نمیتوانند قدرت این فرد رو قدرت خدا رو مثلا بر اون چیره بشن فهاکذا کذا ظهور الله علی الاشیا اینی که خداوند متعال ظاهر است یعنی این ظهور خداوند متعال بر اشیا یعنی این وجهون اخر وجه دیگر اینی که حضرت این نحوه هم معنا دارد که انه ظاهر لمن اراده لا عليه شای. هر کسی که خداوند متعال رو اراده بکنه خداوند متعال ظاهره اینطور نیست که باید بگرده مثلا بپرس از این اون که خدا, خدا کجاست نه خداوند متعال ظاهر است چیزی بر خداوند متعال مخفی نیست و انه مدبر لكل ما یرا خداوند متعال تدبیر کننده هر چیزی است که دیده می شود حالا این در بعض از عبارات هست یا در خود کافی لکل ما بدع هر چیزی که آفریده شده فعی ظاهر از هر و اوزه و امرن من الله چه ظاهری ظاهرتر هست از خداوند متعال امرش واضحتر هست از خداوند متعال من الله تبارک و تعالی فئنک لا تعدم سنعته یا صنعته، تو هیچ وقت صنعت خدا رو معدوم نمییابی. اینه ظهور خداوند متعال همه جا سن الهی رو شما مشاهده میکنید خداوند متعال به لحاظ آیاتش در همه جا ظاهر است در همه جا واضح است همه جا سن الهی رو میبینید هر کسی خدا رو بخواد به ذره تعمل خدا رو میابد میفهمد که خدایی هست فانك لا تعمد مسنعه حيث ما توجهت هر جا که رو بکنی فی فيكم آثار ما تعبیر سریع دیگه حتی در خود تو هم از آثار خداوند متعال چنان هست که تو رو بینیاز قرار میدهد اما خب و ظاهر و من ظاهر در مخلوقات اونی که ما معمولا وقتی میگیم ظهور این رو میفهمیم البارز به دتفسه اینی که خب یک بروزی به خودش داده است خودش رو نشان داده است خودش شکل خودش رو خود حقیقت خودش رو مثلا نشان داده است. در مقابل چشمان ما مثلا تمثل پیدا کرده است رضا حضر می فهموین البار به نفسه و به حده طبعا همچین شخصی حدودی هم دارد و به حسب حدش معلوم می شود فقط جمعنا الاسم و اختلف یا این حالا وقت درفت المعنا به نقل بهار هست که مرحوم الله و هم نقل کردن در خود مصادر بلا یجمعنا المعنا هست که ما هم اسم رو در اینجا فقط اشتراک در اسم است نه در معنا خب در اینجا ظاهر کاملا معناش معلوم شد که از باب قدرت خداوند متعال بر اشیا و از باب اینکه که همه جا سن خداوند متعال رو بینیم همه جا آثار خداوند متعال رو میبینیم و اما الباطن اما باطن فلیس علی علی معنی الاستبتان للاشیاء از زمین این نیست که خداوند متعال بتون دارد برای اشیاء اصلا معناش این نیست به این یغور فیها دقیقا این چیزی که شاید اینها این رو میخوان از این استفاده بکنن به اینکه خداوند متعال غور بکند در اشیا حالا غور بکند در اشیا یا به این معنا که حلول بکند یا به این معنا که اصلا حقیقت اون اشیا خود اونها باشد اینطور نیست که بتون اشیاء خدا باشد للاستبطان اشیا به ان یغور فیها اینی که غور بکند درون اشیاء رود درون اشیا باشد خود اشیا باشد حالا به این ولاکن ولکن ذالکه من الا استبطان هی للاشیاء علما و حفظن و تدبیرا اینی که ما میگوییم خداوند متعال باطن است یعنی علم خداوند متعال حفظ خداوند متعال تدبیر خداوند متعال به درون اشیاء راه دارد از این جهت میگوییم خداوند متعال باتن است که قول القائل اصلا هزه میفهمایم این بلکه در استعمالات هم آمده که ما که قول این فردی که میگوید ابتنته یعنی خبرتوهو و تو مکتوم سره وقتی میگوید ابتنتوهو یعنی من اون اسرار خفیه این فرد رو هم دانستم خوب به این آگاه شدم ول باطن و منها اما وقتی ما میگویم باطن از خودمون به معنی الغائب حالا یعنی در خود کافی غائب هست در بعضی جهال غائر هست اونی که غائب از حقیقتا در اون شی یا غائر از غور کرده در اون شی، فشی المستتر فقط جمعنا الاسم و اختلاف المعنى ما هم در اینجا فقط اتفاق در اسم داریم اما در معنا حقیقتا تفاوت وجود دارد. خب مفسرین حقیقی قران در اینجا ظاهر و باطن رو این نحوه معنا کردن و بلکه نهی فرمودن از این معانی که اینها از این آیات استفاده کردن و این معانی منحی هست حتی از جانب وجودات نازنین اهل بیت و خلاف اون رو بیان فرمودند لذا این آیه شریفه هم که بعضیا بسیار به این تمسک میکنند نه دلالتا نه به حسب اخبار و روایات حتی با تعویلات بعیده قابل حمل بر وحدت وجود و وحدت شخصی وجود نخواهد بود به هیچ دلالتی به این مطلب ندارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته